خب اینجا پرمک های شما هم هست و اما من خواهش میکنم از آقای استاد جنیدی که برای ما ادامه داستان نبرد پهلوانان رو بخوانند. رسیدن گودرز کشبات با سپای ایران به نزدیکی ریبد در شنامه دوبار این نام اومده ریبد این در حقیقت رحیه و انته اوستاییست که آتیش هده بوزین مهرم به فرازان پوده یعنی دارنده فروغ بعد رعیونده تبدیل شد به رعیوند و هم اخنان هم این کوستان کوستان رعیونده و یه بخشی در غرب نیشه به طرف سبزوار و به هق رعیوند خونده میشه و من هم در اون کوستان آ به جون کشید. کجا جوش معلومه که کجاست یعنی من نشون میده که تورانیان چقدر وارد خاک ایران شدن. وقتی تا کجا تا اینجا اومدن، حالا ایران میخواد بده برای فادر است. چوبودر نزدیک ریبد رسید، سران روز لشکر همه برخیزید. از ایرانیان نامورد ده سوار سخنگو اندر خور کارزار سپهدار پس گیو را پیش خوند همه گفته شاه با او برند که این گزین کردم در خورت لشگری که هستند سالار هر کشوری یعنی گودرز به گیو فرزند پهلوانش که پهلوان لورستان بود میگه که من این در نفری که گزین کردم که با تو بیان پیش پیران هر کدوم یک بخش از ایران هستند بدان تا به نزدیک پیران شوی بگویی و گفتار رو بشنویم بگویی به پیران که من با سپاه به ریبت رسیدم به فرمان شاه دروغ است بر تو همین نام مهر مهر یعنی کیش ایران در اون زمان یعنی پیمان و راستی که بارها گفتم نماد گیتیاییش فروغ و سپید دمان هست و نماد مینویش پاکی و راستی و پیمان است. اینجا میگه دروغ هست بر تو همین نام مهر چون در اون زمان هم ایرانیان هم تورانیان البته هم اروپاییان همه کیش مهر رو داشتن و این میگه که نه مهر یعنی پیمان راستی در تو نیست و تو یک شخص مهری نیستی نبینم به دل آرام مهر همان از کنشاه آزرمجوی مرا گفت با او همه نرم به دلیلی که پیران که در حقیقت نجات داد نظرش که کشتی بشه و ورزید برزید بکی خسرو به همون دلی که خسرو این فرمان رو میده همان از کن شاه آزرمجوی آزرمجوی یعنی کسی که احترام میخواد مرا گفت با او همه نرم گوی از آن کو به کار سیاوخش رد نیفکند یک روز بنیاد بد گناهی که تا این زمان کرده ای شاهان گیتی که آزرده ای همی شاه بگذارد از تو همه یعنی گذشت میکنه بادشان بدی نیکی انگارد از تو همه بزرگان ایران و فرزند من بخانن بر تو همه پند من سخون هرچی دانی به دیشان بگوی و دیشان همیدون سخون بازجوی اگر راست باشد دلت بازبان گذشتی تیم تیما رو رشتی به جان زپس زپیش پدر گیف شد تا به بلخ گرفته آن سخونهای تلخ فرود آمد و کس فرستاد زود آنسان که گودرز فرموده بود فرستاده چون سوی پیران رسید سفهدار پیران مرو را بدید دو هفته شدند در سخونشان درنگ بدان تا نباشد به بیداد جنگ بزرگان ایران زمان یافتند برایشان به گفتار بشتافتند یعنی پیروز شدند در بحث بل. برافکند پیران همان در شتاب نوندی به نزدیک افراسیاب سخون چو به سالار توران رسید سپاهی ز آوران برگزید فرستاب نزدیک پیران سواز گردان شمشیر زن سی هزار دو گفت بردار شمشیر کیم اوز ایشان بپرداز روی زمین یعنی افراسیاب جنگ رو تقویت کرد چود پیران بدید آن سپاه بزرگ به تشنه هر یک به کردار گرگ جفا پیشه گشتان دل نیک خوی یا درستش که من پیرایش کردم ستن پیشه درسته ستن پیشه گشتان دل نیک خوی پراندیشه شد رزم کرد آرزوی به گیوان زمان گفت برخیز رو سوی پهلوان سپه باز شد بگویش که از من تو چیزی مجوی که فردانگان آن نبینند روی مرا مرگ بهتر از آن زندگی که سالار باشم کنم بندگی یعنی اون گفت که بیا به ایران مخصوص در سخنان گوده از این که تو بیا به ایران شاه از تو میگذره حالا اینجا میگه که من مرگ برای من بهتر هست که سالار توران هستم بیام بنده پادشاه ایران بشم یکی داستان زد بر این بر پلنگ که با شیر جنگ آورش خاص جنگ به نام هر بریزی مرا گفت خون باز زندگانی به ننگندرون. خب اگر اجازه بدید در اینجا تعدادی پیامک بخونم باز هم پیامک های شما نمانه و من شرمنده نشم ولی میمانه پیامک بسیار زیاد هست و سوالات متفاوتی کردید هر کدوم از شما که یکی از اینها این هستش که یاد شما پاسخ فرمودید من دوباره میگم در برنامه‌های گذشته سلام اگر توران الان بود کجا بود با تشکر از استاد بزرگ استاد بزرگ و مجری عزیز علی رزا برازجانی دشتستان در دشتستان ام، توران ام، البته در یک پدیده طبیعی سرمایه سخت از میان رفت اما محدود توران را اینطور طور باید شما دریای خارز باید در را بگیرید که امروز بهش میگن ارال در کهانترین کتاب ما نام این دریا دریا خارزم بوده و در همیشه از دریا خارزم برده میشه به سوی شرق برید یک دریاچهی تقریبا به صورت کمان اونجا دیده میشه تو نقشه اون دریاچه اسمش از ایسیکول و ایسیکولم هم نام ایرانیه که من در کتاب ایران داستان ایران شهر دادم منطقه زود این رو که بگن که بله اینجا نامش ترکی بوده این مرز رو اگر بگیرید وسط اینجا یه شهری بوده به نام باشی که سیاه بخشم از همونجا رفت به توران. این در حقیق دروازه ایران به توران بوده باشی. بالای دریاچه ایسکول توران باستان بوده. منطقه تورانیا ها به علتی که میخواستن به سرزمین نیاکانشون برگردن مرتباً حمله میکردن تا جیهون میمدن گاکا سغد رو می گرفتن که سانارگاند و بخارا و گوزن و رانده می‌شدن تا در نبردی که سیاوخش به اونها کرد تا بلخ هم اومده بودن. اینا. خود افراسیاب به سغد بود ولی دو نفر از رو با صفات در بلخ بودن. تو همین در همین جنگ شما می‌بینید اینا در ریوانت هستن. یعنی در شمال غرب نیشابور. یه جاییست که بین نیشابور و سبزوار و قچان امروز قرار میگیره. یعنی اینجا. اینجا تا اینجا اومدن. نه و توران ولی توران اصلی همون بود بالای قضغارباشی و بالای درچه به بنام خداوند جان و خرد و با درود به استاد جنیدی و سپاس از برنامه پرگارتان مفهوم فامیلی سوری چیست و نژاد و نجاد پای قبایل سوری به کجا برمیگردد گردد آریاراد از توسیرکان چوی سرکان چوی سرکان بل. بل. من کودک بودم اینو بخونم طوی سرکان من ابتداری بودم بل, بل. سوری از سوریای سانسکیبیت گرفته شده خورشید وابسته به خورشیده و غیر از این معنی ندارد یه معنی دیگه هم داره که البته ما داریم که خوراکی که در هنگام نور خورشید خورده میشه که در فرسیال میگن سور سور یعنی نهار و که در هنگام نیبروز تابش خورشید خورده میشه اما خب مسلمه که این نام یک تایفه نیست سور از سور سورگه گرفته شده که در فارسی و پهلوی شده هوور هور یعنی خورشید خوار یعنی خورشید و این مفهوم شده با یک موسیقی یعنی زر و زیبای زور خونه میریم و میشنبیم و باز میگردیم و آقای استاد جنیدی برای ما ادامه داستان نبرد پهلوانان رو از داستان شاهنامه در دفتر سوم شاهنامه رویه شانزده الان رویه بیسته الان رویه 20 است برای ما میخوانند چون کی برگشت از روی خروشان سوی جنگ بنهاد رو یعنی صفهدار پیرون بیا ما چو پیش کنوابد رسید بران دامن کوه لشکر کشید کنوابن خب خیلی‌ها سعی کردن که بگن این گنوابد چون شبیه به گنوابد هستن خب و این نیست نمیشه یه میدان جنگی طرف شرقیش ریوت و ریوند باشه طرف قلبیش گنابات باشه که در جنوب خورستانه این کنابات یک کوهیه که در بوندهش هم نامش اومده یه رشته کوهیه که در حقیقت بین بستان و شاروت بر قرار داشته اینا اونجا دا بودن اینا در ریوند بودن یا ریبت، اونا در کنابات بودن و اگر ما بخواییم به نزدیکی نام گنابات به کنابات بگیم اینجا گنابات بوده پس بنابراین گنابهی ها در جنوب ایران حق دارن بهتر چون خیلی نزدیکتر از گنابات به کنابات هست ده. و اونا بگن اما نه حقیقت همینه بخش شرقی ریوت بوده بخش غربی دو طرف در کنابات بیا آمد چون پیش رسید بران دامن کوه گر کشید چون در آمد به پیش پدر چون این گفت پاسخ همه به دو گفت پاسخ همه در بدر به, به گودرز در درآور سپاه به جایی که سازی همی رزمگاه که او را همی آشتی رای نیست به دلشندرون داد را جای نیست زه گونه با او سخن راندم همه چه گفتی بر او خواندم که آمد پدیدار از ایشان گناه هیونی برفکن نزدیک شاهینی، موقعی که ما در مذاکراتی که داشتیم و گفتگوهایی که داشتیم معلوم شد که گناه از اونا هست در این زمان تازه اسب یعنی پیام فرستاد به طرف افراسیاب سفاق آمد از نزد افراسیاب که باز گشتیم بگذاشت آب اونا از رود جهان گذاشتن مردن تو البته رود جهان قبلا گذاشته بودن کنون کینه رو کوس بر پیل بست همین جنگ ما را کنه پیش دست برای جنگ، برای کینه، م... کورس و پیر بسته و میخواد که او آغاز کنه. چون این گفت با گیر پس پهلوان که پیران به سیری رسید از روان. همی داشتم چشم زند بد نهان و ولیکن به فرمان شاه جهان به باید رفتن که چاره نبود. دلش را کنون شهریا بود یعنی قیقصو بود که با او به آزرم و نرم سخن بگو من به این دلیل با او مذاکره کردم. برکی که خوش گفته بود. چلانست گودرز که آمد سپاه بزد کوس آمد زرعی بد به راه به پیشواز رفتن. رفتن. زکوه هندر آمد به خامون گذشت کشیدن لشکر بران په دشت. یکی دیدبان بر سر کوه بر بر آمد بر آقوبر دزن بو سر. به همی تا زتوران سپاه پی مور دیدی نهاده به راه. یعنی دیدبان تیزنگری بود که نگاه میکرد که تورانیان کی میام از خروشیدن و راستی به گفتی گودر برخاستی درباره خروش و جیغ و اینها من قبلا صحبت کردم که به این ترتیب یک نفر با فریاد یعنی خروش میگفت اخبار رو کسی که به فاصله بوده که این رو بشنوه میشینید و روشو برمیگردتون به این طرف به نفر سوم فریاد میکشیدن و می رسید این به این ترتیب خیلی زود اخبار می رسید به حالا به شاه یا سپه هر هرکس که بود خیلی زود می رسید و من بازم اینو گفتم که وقتی که م... کودک بودیم در بیابانهای روستاهای خورستان می رفتیم م... می پرسیدیم که مثلا فلان روستا چقدر راه هست مثلا می گفت که سجیغ راه یعنی به اندازه سه نفر که بیستن و این فریاد بکیشن این شناخته شده بود ولی با این آمدن کیلومتر و اینا همه اینا مذهبه رفت در حیات. مزدیده خروشیدن آراستی بگفتی و گودرز برخواستی. بدان سان بیا آراست اون رغمگاه که رز مارزو کرد خورشید و ماه. چو سالار شایسته باشد به جنگ نه سپاق از دلاور پلنگ. یعنی پشت سپاهیان گرم بود، به شاهستگی کودرس. دلشگر به روی اندر آورده روی همه نامداران پرخواه چنین ایستاده سه روز و سه شب یکی را به گفتن نجوم بیدلب همین گفت گودرز گر پشت خیش سپارم به نه هم پای پیش سپاه هم در پس پشت من و جز از باد در پشت من همه روز بر پای پیش سپاه همین جز نیکختر و نیکختر حور ماه ستارهشنناسان بگن که کی اول ستاره شنسان آز بودیم دی در بعضی از ها روز فرخ اعلام کردند و سوبا ایران رفت و با هم روز فروخت که این ها گفتن ان نام شکست کردند در این پیش بینی ها همه نادرسته و این پیش بینی ها یک دی سوودجو می که پاد متکی به خود نیستن و میترسن از آنده از این خاصیت آنها سود میذاستند و ما ما پیشکو هستیم. حالا یکی از این گروه از اینا پیشگو بود به با ما سفارگانو خورشید. بعضی بودن که مروای یعنی با پرواز و مرغان پیش بینی میکردن. که مثلا فرق کن که در آسمان مرغابی ها که حلکت میکنن از رو اون اینا میدونیم همه نادرسته. و انسان باید خودش برنامه خودشو پیش بریزه با برنامه درست آهنگ درست بکنه برای انجام کار پیشگو یا همه نادرست آب در برم. همه روز بر, پیش بر پای پیش پید سپاه همیجس نیکاختر هور و ما کجا بردمد باد روز نبرد که چشم سواران بپوشت بگرد میدونید بازم یکبار دیگه گفتم که باد در روز نبرد خیلی تعیین کننده بود چون از روبرو اگر باد میومد مخصوصا اگر باد شدید باشه میزد به چشم سپاهیان این سو و اون باد همراه با گرد و خاکی بود که از سوم و اسبان دشمن هم بلند شده بود این مراتب این گرد و خاک و باد رو میزد به صورت و نیروی اینا رو کم میکرد بنابراین کسی صفایی که از پشتش باد بیاد همیشه پشتیبان خوبی مثل باد داره که اون وقت می‌گفتند وای زد اینا رو من پیشتر بله بختم. پیشتر فهمیدم به در مورد خورشید فرمودی اگر خورشید خالصون بله از رو باشه بله شدمه. ولیشان بیابن مگر دستگاه و کردار باد اندرارم سپاه به روز چهار امز پیش سپاه بشد بیژن گیف تا قلبگاه به پیش پدر شد همه جامع چاک همه باسمانور پراکند خاک به دو گست کین باب کارازمای همه در همه آمده که باب کارازمای باب بابا یعنی پدر بزرگ هنوزم در افغانستان و تاریستان بابا رو به پدر بزرگ میگن پدر پدره و بابا پدر بزرگه. اینجا اگر بگیم که ای بابا کارازمای خطاب به گیف میشه. اما اگر که من ویراش کردم این پیشنهاد دادم نه اینکه تغییر داشتم. در زیر نویز پیشنهاد دادم که اگر بگیم که این بابا کارازمای اون وقت گفتگو بین بیژن و گیف قرار میگیره که در حقیقت در باره گودرس هست. بدون گفت که این بابا کارازمای چه دارد؟ چنین خیره بودن به پای بره چی؟ بیهوده خیره نبیهوده بیهوده ما رو اینجور زپا نگه داشته شگفت از تو آید مرا ای پدر که شعر جیان از تو جوید هنر لشکر همی بر تو دارند چشم نیکی تیز کن مغز و بفروز خشم به من با داد باید سواری هزار گزین من هم در خور کارزار گفتار بیژن بخندید گیف بسی آفرین کرد بر پور میو به دادار گفت از تو دارم سپاس که دادی برا پور می شناس. از خداوند سپاس روزایی که فرزندی داره که اینطور آماده دفاع هست ولی کم تو ای پور چیر سخون زبان بر نیابر گشاده نکن این پدر بزرگ که زبان گشاده نکن ایرادی یعنی از او نگیر که او کار بی دست و داناتر است برای این لشکر نامور مهتر است کسی که بود سوده کارزار نباید به هر کارش آموزگار لازم نیسته بود درس بدی سواران ما گر به درند بار یعنی زیر برگستوان رو برگستوان پوشیدن خود سواران همه زیره پوشیدن کلا سرشون ببر و اینها دارن گبر اینها دارن و خوب زیر آفتاب سه روز اینطوری بیستند خب درمانده میشم دیگه اینجا میگه سواران ما ماگر به بارندرن نه توران به رنگ و نگارندرن. یعنی تورانیان رنگ و نگار به خودشون نزدن اونا هم همینطورن همه شوربختند و برگشت سر همه دیده پرخون و خسته جگر همی خواهد این پیر کار آزمای یعنی گودرز که توران به جنگندر پای پس پشتشان دور از کوه برد لشکر کینور همگروه دو دیگر کجا زختر نیکوبات بد همی گردش, گردش چهر را بشمرد چو پیش حایتون روزگار بهی کند روی گیتیز دشمن تهیب. چون گفت بیژن به پیش پدر که ای پهلوان جهان سر به سر خجست نیا را گرین است رای سزدگر نداریم زاهن قبای یعنی شایسته که قبای آهنین ترمون نباشه و در بر بیاریم این زهره رو در بیاریم جوشن رو خود بیرون کنم به می روی پجمورده گلگون کنم یعنی به جای رزم برم بعض بگوزیم چون آیم جهان پهلوان را به کار بیایم کنار بسته کارزار یعنی هنگامی که لازم شد که من بیام اون وقت بیام و برای جو بیشتم زیر درخشش آفتاب و این زیره و اینا بر باشه اوزان لشکر تور هومان دلر به پیش برادر بیامد که شیر که ای پهلوان ردف راسیان گرفتن در این دشت مار و شطاب. از آهن میان, میان سوده و دل زکین مهادت دو دیده به ایران زمین چه داری به روی در آورده روی؟ چه اندیشه داری به دلدر در؟ بگوی. که رای جنگ است جنگ آزمای برای رای برگشتن ای در مپای. که من از بر تو، ای پهلوان، بر این کار خندند پیر و جوان. تو بشنید پیران هومان سخون، به دو گفت مشتاب و تندیم مکن. بدان ای برادر که این راز که آمد چون این پیش ما با سپا، گزین بزرگان کیخوس روست. نه در جهان شرد نامداری نوست. از از زین خودم خوندم جای دیگه. در شانامه اینطوری که گزین بزرگان کیخسرو است سر پهلوانان آن پهلو است یکی آنکه کیخسرو است شاه من به دو سر فرازت به هر انجمن دیگر که از پهلوانان شاه ندانم چون گودرز کس را به جا یعنی گاه و مقام و گودرز امروز در ایران از همه بالاتر است نه امروز وقتی دیگه هم بوده که مثلا میبینید که سهراب از حجیر میپرسه که اشاره به سپا گودرز میکنه که اون کی هست از این پهلوانان ایران میبینیم که حجیر پاسخ میده که فر ایران و آزادگان سپهدار گودرز کشورگان زمان خیلی گذشته از اون وقت ولی اون واقته بود گودرز فر ایران و آزادگان میگفتند امروزم اینجا که میبینید که احترام داشته در ایران دو دیگر که از پهلوانان شاه ندانم چون گودرز کس را به جا. سه دیگر که پرداغ دارد جگر پر از خون در از درد چندان پسر در همون جنگ هموان خیلی از فرزندانش از بین رفتند کنون تا به تنشندرون جان بود بر اینکینه چون مار پیچون بورد سخن اینجا بود که سه دیگر که پرداغ دارد جگر پر از خون دل از درد چندان پسر کنون تا به تنشندرون جان بود بر این کینه چون مار پیچان بود چهارون که لشکر میان دو کوه فرود آوری دست و کرده گروه هر سوک پویی به تو راه نیست برندیش که این رنج کوتاه نیست به کوشید باید بدان تا مگر از آن کوه پایه برارند سر چو از کوه بیرون کشد لشکرش یکی تیر باران کنم بر سرش چو دیوار گردن در آوریمشان چو شیر در بر آوریمشان ایشان بگردد همه کار ما براید بخورشی بر نام ما تو پشت سپاهی و سوار شاه برآورده از چرخ گردان کلا کسی کو به نام بلندش نیاز نباشد چه گردد همی گرد آز میگه تو به عمض کافی در توران آبرو داری از پهلوانی اونا برای چی میخوای که بیشتر برای خود نام فرام کنید بگذار تا من با اندیشین این کار رو کنم نگه کرد هومان به و اوی همین خیره دانست یعنی بیهوده کردار اوی چون این داد پاسخ که زیران سوار نباشد که با من کند کارزار تو را خود همین نیست خوی مرا کارزار آمد از تارزوی اگر کت بکین جستن آهنگ نیست به دلتندرون آتش جنگ نیست کنم آنچه باید بدین رزمگاه نمایان هنرها به ایران سپاه ورکت یعنی چی اوگر ارت یا اگر و... تورا يعني... و... وا... که و... تورا کت یعنی که تورا او گر یعنی او يعني... اینجا یعنی يعني... و یعنی يعني... گر یعنی يعني... یا او... در شانامهن بسیار گر میت. در ابسته بوده حکره در پلدی شد حکر بعد هکر به اگر بعد خلاصه میشه میشه ار اگر میشه ار در انگلیسی میبینی اوریانیو او. ریشش تو اوستوس اگرکت او یعنی یا و یا که تو را. یا اگر تو را رای جنگ نیست خ خب اگر فکر کنم تا این بخش باید داستان بماند در هفته آینده ادامه داستان رو داشته باشیم درست از این کار و راستی از این داستان ایران چه خبر بس. کتاب شما داستان ایران که ایران کجا ایران منتظرش هست من کار خودم پانا رستندم منتا اون فرزندی که مشغول این کار بود به سربازی رفته و کمتر وقت میکنه و من نمی‌خوام این کتاب رو از او بگیرم چون او رو این کار خیلی زحمت کشید به نام خودش بیاد. حالا دیگه در حقیقت زبان داده به من که زودی این کار رو ببین حروف چینیش انجام شده باید صفحه بندی بشه. صفحه بندی هم کارش خیلی مشکل چون تصویری زیاد داره این کتاب و امیدوارم از آن دیگه من فکر نمی‌کنم به نوروز برسه اگر برای نموشو کتاب برسه خودش خیلی خوبه. به امید خدا. درود بر شما. اول کنم که این پیامک دو تا شنونده عزیز ماست که خواهر برادرن نرگس و علی که علی هشت سال است درود خیلی قشنگه پیامک و سوال علی است. درود بر شما برادر هشت سالم از استاد این سؤال رو داره که چرا در رزم رستم و سهراب رستم زمانی که بار اول بر زمین میوفته سهراب سهراب برزنی می افته. اونو فریب میده آیا این کار جوان مردانه بوده هست متاسفانه اولا دروت به این اه... علی ریزا ان... انرگیس علی که از سارای ده ساله دو سال جلوتر افتاده فرزندان جان باید همیتر باشند متاسفانه اون حزبی که خائن بود و با ایران مرتبا خیانات کرد یک چینین دروه هایی رو فراکند و در حقیقت زدودن این دروها به این آستونی نیست همین امروز هم باز کسی دیگه از من پرسید و اگر در حقیقت نشانه ها رو بگیریم و هم که گزارش بکنیم دو جنگ اتفاوت افتاده بین سیستانیان پیاده و اونایی که از سمنگان آمدن در یک روز این سیستانیان با کس رو برو میشه. در یک روز دیگه وقتی دیگه سیستانیان پیروز میشه به این ترتیب چون سیستانیان نامشون تحت عنوان رستم میاد و سمنگانیان تحت سهراب بنابراین باید آرایه داستان باشه که اینطوری گفته میشه و چنین نیست در این داستان یزدان گواه هست که من هفت خوندم البته گریستم اما گناه رو از نمی دونم و از سهراب میدونم چرا برای دیدن پدر خودش با دوتن از پهلانان دو، کشور دشمن و دو سپاه از کشور دشمن اومده به ایران. چرا میخواد ایران رو ویران کنه گفته بود دیگه برانگیزان از تخت کابوس رو به پا بفتنن بیژن و توس را اینا. که یه فرزند اگر میخواد پدر رو ببینه کافیس برای کاروان بیاد بره سیستان پدر خودشو ببینه. این در حقیقت همه اون زهر‌هایی که اعضا اون حزب خائن که بالاخره از بین رفتن با خیانت از بین رفتن پاشیدن تو مغز ایرانیان نماد پهلوانی و شجاعت ایران روستم یه حزبی بود که خیانت میکرد به ایران پنجا سال دیگه من نمیخوام بل. بل بل. اما شاهنامه همون شاهنامه معروف هم بل همون بله بله خب این گرد باید زدوزو بشه از اندیشه بر روان و جان ایرانیان روستم نماد پهلوانی و بزرگی و سفرازی ایران بود او هیچ وقت به قدر پریشان رو که دواجه بیادم نمیاد. چی گفته بود؟ خیانت کرد چی گفته؟ بله پردرش کشته بود فرزندش رو بله. میوفته فریب میده فریب دو. من ب... این ببینه که نهایت پریشانیم چیه که باجر رو فراموش میکنم اما درود به اون پهلمانی که به خاطر دفاع از ایران فرزند خودش رو به خاک زنه ایران بالاتر از سخرابه به ایران به اندیشیم استاد روز پاسداری از جانوران خجسته بود. یه سال میشه که از برنامه‌تون میگذره و از شماتون سپاسگزاری می‌کنم. استاد فاطور همین زمان‌ها بود که سخن از جمشید می در دروندیزات خواندم که در زمان جمشید زمین تنگ آمد و جان به سوی نیمروز رفت. هر بار یک 3 یا دو 3 و اینا نسبت به زمین اولیه به سوی نیمروز رفت. راز این حرکت جمشید به سوی نیمروز چه بود؟ از سپاسگزارم، خوشایند. روز بر شما بهمنگان و کجاست بود؟ گسترش کشور به طرف گرما چون در اون زمانی که سرمای ورم چهاهارم رخت داد ناچار و،, و افراد زیاد می شدن و دام, دام ها زیادتر می شدند جانوران اینها باید به طرف نیمروز به طرف گرما حرکت بکنن. از توجیکستان که به گمان من اامویژ ایران، ایران بوده کم کم میاد به طرف جنوب. نام این شهرهایی که کم کم تشکیل بشه اینا همه در وندیداد اومده و من هم به گستردگی در دوستان اینا رو شهر دادم درود بر استاد جنیدی و شما آقای هدایتی ما که تازه با این کتاب بزرگ آشنا شدیم با چه روشی پیش رویم که این آشنایی به شناخت امیختر و عشق بیشتر منجر شود همچون استاد که با گرمی خواستی به همه ما شیرینی میدهند صدای استاد شیرینی یک سالی شما شماست ولی افسوس که ما یک ماه شنونده شما بودیم از برج کتایون نصر اللهی درود به کتایون و ویروکارت چون نام باستانش ویروکارت بوده خب کم کم این سی دی های گذشته حاضر میشه ما شما میتونید با بنیاد نیشابور تماس بگیرید اونا رو, اونا رو هم گوش کنید به یاری یزدان تلفن بنیاد نیشابور هشتاد و هشت نوود و هفت هشتاد و چهار هشتاد و هشت نوود و میشنویم سلام و درود دارم خدمت سربازان جبهه فرهنگ و ادبیات زبان فارسی ما سربازان رشیدی که روحیه دادن به ما کمترین در مدت این یک سال واقعا نمیدونیم چطور گذشت اصول عمر چراغی است که در بعضم وجود به نسیم بر هم زدنی خاموش هست انگار یه چشم میزنیم تموم میشه می‌خواستم از آقای دکتر بپرسم که در شاهنامه فردوسی بعضا ایرانیان با تورانیان هم کلام میشن صحبت میکنن مکالمه میکنن آیا زبان ایرانیان و تورانیان یکی بوده یا نه متفاوت بوده مثلا ترجمه میکردن یا افرادی بودن زبان همون میدونستن در موضوع زبان ایرانیان و تورانیان اگر ممکنه آقای دکتر توضیحاتی بدن ممنون میشم فنگاری هستم از نوشهر مازندران خدمتتون و شدم حق نگه داری شما باد درود و دو ست به درود درود بر شما تورانیان نژاد فریدون بودن فریدون پدر آرگایان جهانی اونو ایرانی بودن تور فرزند فریدون بود ما در عوستا از تورونی با نام تو همیشه می‌بینیم که یاد شده تو ایران این یعنی پسرامو ما می‌دونستیم اونا پسرامو ما هستن اونا هم می‌تونستان زبان هم یکی بوده فرهنگمون هم یکی بوده نام هایی که در توران که می‌بینید که همه ایرانی دیگه فرنگی و منیژه و پیران و هومان و همه اینا نام های ایرانی و یعنی آریال باستانه که با اون حجوم ها تبدیل به دشمنی شد متاسفانه بله هیچ ترجمونی در کار نبوده اینا به به سادگی زبان همدیگر رو درک می‌کردن سلام علیکم من محاستم که خدمت آقای دکتور بفرمایی که اگر ممکنه بفرمایی که این کتاب شاهنامه ایشونو از کجا میتونیم گیر بیاریم تهیه بکنیم مچکر میشم تلفن بنیاد من همین الان خدمتتون هست کردم این تلفن مال قبل تر از این بوده فکر میکنم کنم بنیاد انور از طریق بنیاد انشابور شما شاهنامه رو تغییر بفرمایید هشتاد و هشت ن و شش بیست هشت، و شش، هفت چهار. و چهار هشتاد عرض میکنم که تلفن بعدی رو بیم. بچه‌ها مریضان که از همشهریه رو افتاده هستن. اینکه دو تا سوال باشه مگه لط کنم، فقط من دست دیدم و ظرافت این سالا جواب بدم به هر حال در ده من انقدر چندان که این برنامه متو من جالب بودی که همه دوستام کسایی که میشناختم توصیه کردم حتما این برنامه رو گوش کنن. انگار که تون دیگه من مهم بود. اگه فقط لط کنم میگن که اسم خود میشاووف از چه واژه‌ای گرفته شده؟ اسم میشاووف به چه مفهومیت ممنون برنامه‌ش چی؟ سوال دیگ هم باشه. بر از معنی این محمد شورگشتی از درست بر شما نام روستای شما شورگشت است. شورگشت نگید. و نام نیشابور قبلا بوده ریونده که در در و در پهلوی شد ریوند در شاهنامه به گونهی ریونیز ازش یاد شده اما در یه جریانی حالا زمین لرزه بوده یا جنگ بوده چی بعدا در زمان ساسانیان اون رو دوباره ساختن و این بار نام شاپور رو برش گذاشتن نو شاپور یعنی شاپور پهلوان اما خراسانیان که پارتی بودند و از ساسانیان دلخوش نداشتن برای کنها کودتا کردن ایران رو از شاهنشاهی مردمی ایران به دور کرده بودن دلشون نمیخواست که نام شخص ساسانی نجات روش باشه بنابراین همواره در متون پهلوی از این شهر با نام اپرشت رو نام شده،, یاد شده مگر یک جا فقط اپرشات یعنی شهر برین شهر بالا و با این کار یعنی با, با یک تیر دو نشان زدن یکی اینکه که نام نیب شاپور رو از شهر خودشون برداشتن و دومی که خود ساسانیانم فریفته شدن گفتن خب شا... شطر برای شاپور اومده و به این ترتیب پایگاه و مقام شاپور نشون میده بعدن وقتی که ساسانیان شکست خوردن و اسلام اومد چون اون حساسیت ها دیگه کم کم از بین رفت اون وقت در نوشته ها نوشتن ابرشهر یا نشابور نیشابورم نه نشابور نشابور به تلفظ درست من نام رو بج یا بژ متوجه نشدم که ایشون چی گفتن برای این کار میتونن ایشون یک پژوهشی در باره نام کرمان نوشتم از بونیاد نشابور بخوان اونو بخونن خیلی راهنمای خوبی برای نام های ایرانی و ضمن همینجا ارز کنم که یک شخص فرزانه بزرگواری به نام استاد محمد مهریار استاد بزرگ سپاهان ایشون چندین کتاب درباره نامهای روسته های و ضمنن نامهای ایرانی نوشتند که از اون پژوهش ارزنده بسیار خوبیشون که که با کمال کوهولت و ناراحتی روی تخت خوابیدن ولی مهر ایران رو فراموش نمیکنم همواره به یاد ایران هستم مهر فراوانی هم همیشه به من ابراز میکنم کنن کتاب اگر خونده بشه راه هست به فرمایی دونهای جنالی بگید که محرزاد ریششتیه معنیشتیه مادر چه تاریخیه افضل جز جدید هرچی بگید درود بر شما اگر درود به هم بگیم بهتر فکر میکنم محرزاد یکی از نمای تازی است که دیگه ایرانیان به کار بردن اگر چیز بخواییم گونه پهلوی بگیم میترزات میشه منطقه ما در معطای پهلوی میترزات نداریم میترزات ممکنه باشه و شادم میزاد ساده تر میترزات باشه با سلام با استاد فرزانه و مجری محترم من هر شب برای پسر پنج سالم داریوش داستان میخوانم غیر از یک شب شبها که صدای با ارزش شما را گوش می‌دهیم با تشکر سهر من در روز مثل اینکه به سر پنج سالش داره رکورد می‌شکنه اگر مادرها صدای فرزند در زهدون صدای مادر رو می‌شنوه همون اوائل برنامه ها بود که اگه یادتون باشه یه بانوی گفت من برای شکی که در اندرون برای فرزندی که در اندرون زهدون هست شاهنامه می‌خونم اگر ایش بخونیم اونا با روحی بلندتر زندگی رو آغاز خواهند کرد و با جهانی فراختر رو برو خواهند شد من همینجا با همه جان و روانم به همه کسانی که پیامک فرستادند یا تلفن زدند که مانده، تلفن های زیادی مانده، پیامک های زیادی مانده که نمیتونیم وقت نیست جواب بدیم یک ساعت و نیم مانند یک دقیقه بر ما میگذره خیلی هم چندم که هم میگم. دلد. و چه کنیم دیگه این وقت نیست من درود میفرستم به همه شاد باشید همه با هم در راه پیروزی و بهروزی ایران سپاسگذار مانده نباشید شاد باشید در مانده نباشید از شما شده نگان عزیز تشکر می‌کنم که برنامه ما رو شندید تایی کننده برنامه آقای محمد رزا حیدری صدا برداران آقای علی تاهری و آقای نورالله حیدری هماینگی پخش کازم مهدی ابراهیمی همانگی برنامه بر ارتباطات سخرا به ستایشمنش و آقای حسین چگینی زاده منم همید رزا هدایتی راد هستم سپاسگزارم یکی از عزیزان پیامک زده بود که الان پیامکش من نمیتونم پیدا کنم و گفته بود که بعد از یک سال شاگردی من به تو به من به همید هدایتی معدل دوازده میدم خدا رو شکه رد نشد شد باشید شد ها